جلسه قواعد فکر و سیاسم هفته یازدان جلسه 21 و یکوم سی نوه آموزشالی امام رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سيدنا ونبینا القاسم محمد وعلی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقية الله فی الارضین روحی وارواح العالمین له الفدا ما در بحث تزاهم بودیم یه سری انواع تزاهم رو گفتیم از منظرهای مختلف آخر بحثی که داشتیم تزاهم حکم واقعی و واقعی واقعی و ظاهری ظاهری و ظاهری یه سری بود یک تطبیقی هم داشتیم از افادات آیت الله سید در بحث قیادت قیادت و رهبری یک فقیه کف با فقیه اعلم که از این منظر خلاص بهره بردن خیلی من شو عرض کنم انواع تلازم ها رو از لسان منحوم ناینی با دو سه تا تقریر ازشان رو بردیم گفتیم که منشه تزاهان رو شان بررسی فرمودند یکی تزاد متعلقین بود در زمان واحد یکی قدر، عدم قدرت با اختلاف زمانی بود یکی گفتیم اتحاد متعل... دوتون دو متعلق به نحو وجودی بود اتحاد وجودی متعلق این بود و مورد دیگه داشتیم این که یکی مقدمه وجودی برای متعلق دیگر باشه حالا اینا رو از دوست متن و تقریر که داشتیم یه جایش با هم تفاوتهایی داشت و در مجموع این تعبیر رو داشتن که آها تضاهم بین دو حکم اختصاص به عدم قدرت در مقام امتصال نداره یه موارد دیگه هم داریم ولی عمده اینا هاست که این پنج مورد رو در این چارچوب ملاحظه فرمودید نکته ای کلیدی که ما باید اینجا داشته باشیم این که به هر حال در بحث اهم و مهم فقه اهم و مهم و بحث موازنه مسال و مفاسد اینجا ما باید در نظر داشته باشیم مبانی کلامی، مبانی اصولی همه اینا میتوانه تأثیر داشته باشه بعد، همه اینها اگر لحاظ بشه یک بسته کاملی است یکی از موارد مهم خدمت شما از کنم تاثیر مبانی مطرح در حسن قبح که آیا مبانی مختلف در حسن و قبح میتونه تاثیر داشته باشه مرحوم شریف العلماء یه اشاراتی دارند که آقا مبانی مختلف در برخی مسادق تضاهمی میتوانه موثر باشه تو بحث و نحی و اینها تو اخشید اجتماع امرو نحی و اینها یا بحث ایشان در برخی از مسادقی که مربوط به تضاهم هم هست متفاوت خواهد بود ایشان مثلا میفرماند که اگر ما حسن را ذاتی بدانیم یا وصف لازم بدانیم یه سری مسادیق به نحو متعارض خواهد بود مثلا کجا اگر یک امری زیانبار باشه صدق مثلا صداقت زیانبار داشته باشیم یک راسگویی موجب قتل نفس محترم بشه اینجا دو تا عنوان حسن وقب به صورت متعارض خواهند بود اگر بگیم که حسن ذاتی است یا بگیم مصلح لازمه در جایی که مثلا صداقت زیان بار باشه موجب قتل نفس محترم باشه اینجا این حس و قوق به اصر رو میبرن میاندازن در دامن تعارض خب حالا اگر راهی برای این فرار از این محضور بود خب اون راه رو باید رفت از افتادن در دام تعارض و تنافی این دو باید خلاصه فرار کرد اون راه رو برد تهیه کرد چرا؟ چون که هر دو طرف برای دوچار مشکلند اما اگر نه مفرری نبود این تنافیه مستقر شد بعد یکی رو خلاصه ترجیح داد اگر نشد بین اونها خلاصه می توان مخیر تخییر هست حالا این, این دو سه فرض که فرار، ضرورت فرار از محضور یا اگه شد اگر مفر نبود ترجیح طرف یا اگر مساوی بودن یکیش ترجیح بر اون یکی نداشت تساوی این بر فرض ذاتی بودن و ملاز یا لازم بودن اینهاست اما اگر قائل به اعتباری بودن بشیم اگر قائل بشیم که اینا یک وجوه اعتباری است دیگه اینجا اونجایی که مفرداره اصلا حسن و اجتماع ندارن تنافی ندارن فقط قوبه محض وجود داره چرا؟ که جنبه اعتباری داره اینجا حسن و ذاتی نیست وسب لازمم نیست بیشون فرمیده که آه حسن و دیگه اینجا اجتماع پیدا نمی کنن با هم تنافی پیدا نمی فقط ما قوبه داریم اونجایی که مفرداری باشه اما اگر مفر ندارند حسن و قب اجتماع نخواهند داشت بلکه فقط قبه محض وجود خواهد داشت اینجا شبیه اون قبلی قبه محضه ولی آخرش باید یکی رو خلاص مرتکب بشه یکی رو تن بده بهش یکی کدام رو اونی که قبه کمتری داره اشان فرمودن که سمره در کجا ظاهر میشه اونجا که مفری باشه اینجا سمره ظاهر میشه در یه صورت که ذاتی یا وسبه لازم باشه حسن و در این صورت خلاصه از یه جهت منتصل خواهد بود اون فرد از یه جهت معاقب اما بر مبنای اعتباری بودن حسن و قب یا کاملا مصاب است یا کاملا معاقب یا این بر یا اون بر ولی اگر ذاتی باشه وصف لازم باشه هم این طرف دوچار مشکله هم اون طرف دوچار مشکله پس اونجایی که مفری هست راه فرار از این تنافی هست نتیجه میشه که یه طرف از یه جهت معاقب باید باشه از یه طرف ممتصل اما اگه اعتباری باشه ندیگه یا این یا اون عبارات رو من ازشان بخانم در شریف العلم ها زواب اصول صفحه 157 لعنه نرا فی بعض الموارد من انه حسنه او قبحو ذاتی اللهو ای لایختلف بالاعتبار و امکانه به وصف لازم که صدق پس اگر ذاتی باشه یا وصف لازم باشه که شبیه اونه بیان و انکه عرفت سابقا یک ان من معقول به ذاتی اول وصف لازم یکون فی مثل صدق زار الموجب لقتل نفس محترمه الحسن و و کلاهما موجودان به نحو تعارض بین ذاتی یعنی این هر دو هستن اگه شما قائل که اون حسن قبض ذاتیه خب از یه طرف می‌بینیم آقا این دروغ‌گویی ضرر داره موجب قتل نفس محترمه میشه خب خود صداقت حسنش ذاتیه ضررش هم این که موجب قتل نفس محترم میشه خب اینم بعد دیگه پس هر دو هستن خب در اینجا در این مورد می فرما نزن این کانال شخص مفر و نذاله پس خب تفکیک خب آقا یه تفکیکی بر اساس نظریه ذاتی بودن این یک طرف یه بحث یه بحث هم اعتباری بودن در هر دو تفکیک میکنیم بین دو فرض مفرد داشتن و غیر مفرد داشتن خب توی بحث ذاتی بودن قسمت اولش اینه این کانل شخص مفرون هنزالک به انکان یمکنه اخفاء نفسه حتی لایست لایست الو احدون انش شخص نزی یوت لفت به اخباره قایم شه مخفی بشه کسی نیازش بپرسه لزمه و تحرز میتوانه خودش به لالی بزنه به کری بزنه قایم شه یک کاری بکنه دیگه که نیان بپرسن یا مثلا اگه گفتن میگه من نمیدانم مثلا وحفظ کنیم حالا اون نمیدانم ممکنی دروغ باشه از بحث خارج باشه اگر مفرری باشه باید اون مفر رو خلاصه بپیماید خودش رو بخی کنیم لازم اما تحرز و عدم و صدق بلکز نباید خلاصه دروغ بگه ازفی کل من همه محضورون اگر دروغ بگه گناهکاره اگر راست بگه منجربه قطع نفس محترم میشه هر دو صفت در واقع حسن و ذاتیه دیگه اگر مفرد نیباشه فلا صدق مازالک و ساره سببا قتل نقص محترم لکان ازالک علال قول به ذاتی اول وصف لازم متی و و من منجد ان و صادق و آسی و و من منجد لزرار چون که این هر دو وصف این هر دو عنوان ذاتی است خب همین دروغ گفته خب بخشید همین راست گفته خب سواب باید بهش بدیم این یه جهت همین که موجه به قتل نفس محترمه شده گناهکاره از این دو عنوان ذاتی بود دیگه پس اگر مفرری داشته باشه نتیجهش این شد که دو دوبادیه اگر مفر نداشته باشه اینجا باید چه کار کنه باید یه طرف ترجیح بده اگر نتوانست ترجیه بده مساوی بودن تخییر این در چه فرضی ادم مفر و فرض مفر این هر دو در مبنای ذاتی بودن و این لم یکن له مفرون و دار امرو بین صدق الموجب لحلاک نفس محترمه بلکه هزب الموجب لنجاته ها فلا بودم این ترجیح عدت طرفا این کانه دوما اشد و اهم اگه یکیش پر رنگتره اهمیتش بیشتره خب اون رو ترجیح بده و الا فت تخییر مصابه باشن تخییر خب بریم سر مبنای اعتباری بودن اینجا هم دوباره اون فرض مفر داشتن و غیرم لا مفریت تا هر دو و اما قول به وجوه الاعتباریه ففی ما لمو مفرون لا کنول حسن و قب مجتمع این اعتباریه دیگه تو ذاتی نیست که بگیم هر دو هست چون که اینجا چاره این نیست چی میشه اینجا حسن خوب جمع نمیشن بل قبیحون محزن قبیحون محزن این قباحت فقط داره چرا لتوقف الحسن علا انتفاع جهت القب یه جایی که قب باشه دیگه اصلا هیچ حسنی نمی توانه وجود داشته باشه حسن موقعی خواهد بود که اون قبه نباشه ولی قب خلاصه باشه جلوی حسن رو میگیره پس دیگه شما نگو هم حسن هست هم قب همین که یه خورده قب بود دیگه اون حسن رو میپرمیره لتوقف الحسن علا انتفاع جد قب این در فرض فیما لهو مفر بود اونجا که لا چی؟ و کذافی ما لا مفره لا, لا مفره باشه باز همینطوره چرا؟ لیکن لعجل عدم لزوم تکلیف به مالای و تاق اونجا قبیه محض بود به خاطر چی؟ این دوتا با هم نمیتوانه سازگار باشن خب فقط میمانه اما اگر لامفر باشه چی؟ اینجا چون که مستلزم تکلیف به مالای و تاقه این خلاصه حکم قپ محص خواهد بود پس حیثش علتش بحث کرد وک از ماله، مل لا مفر الا لکن لاجل عدم لزوم تکلیف به ملایا تا هو مکلفون برتکاب احد المحذورن بل اقبه الاقل القبيح این مجبور یکیشو تن بده ولی همون یکی دیگه هست اون حسنه میپره فللا کون ف صورت اللق اگر اعتباری باشه نذاتی دیگه فقط قه به خلاف ذاتی اول وصل لازم ف نه لازم مح ما اجتممال حس و ق ف ف صورت ا فی ماا مفر له و فیمالمون مفرون و محصل و سره عملا خب نتیجه چی شد؟ اون دو بود بود اونجایی که ذاتی باشه این بعدی دو نبود فقط اق... محض قب بود اه... و معسل و عملا فی صورت وجود المفر انه هو على الذاتي اول وصل لازم متصل من جهه و معاق من جهه اخرى و على الاعتباري اما مصابون مس او معاقون مس این حالا دیگه اون ذاتی و اعتباری بودن زیر مجموع مفر بودن بود. بیانت قبل محور تقسیم رو گذاشت ذاتی در دو شقه مفر رو عدم مفر اعتباری در شاخه مفر رو لا مفر حالا برعکسش میکنه تو این دو پاراگراف کوچیک محور مزاره مفر رو لا مفر اون ذاتی و اعتباری بودن زیر آورد. میگه اگه مفر باشه در ذات نگاه روی کرده ذاتی انگاری ممتصل و معاقب همزمانه دو جهتیه اعتبارش باشه یا این بر یا اون بر و علال اعتبار اما مصابه مست او معاقبه مست, مست ازا عرفت زال فنقول ان ازا رجعنا اهل اقول و الارف نرام فصدق صدق المزر یمده این جهت صدق و ایز این جهت زرر حالا اگه بریم ببینیم بخواهم ببینیم عرف جامعه چی رو میپذیره این دو بودی بودن رو میپذیره یعنی که اون نروی ذاتی انگاری درش هست و زالکه کاشفون من ان حسنهو اندهون و فلفاقه لیسه علل اعتبار این دو بودی میبینن البته ای اشان تو اون بحث ذاتی بودن گفت و بودی میشه اینجا یه جوری مسیر عوض شد تو تعبیل مرحوم شریف العالم ها میگفت بریم سراغ مردم میبینیم چیه هم مدهش میکنن هم زمش میکنن تبقیه اون بیانه بالا باید میفرمودن چیه این بعد بگیم حسن خوبش ذاتیه ولی اینجا نتیجه رو بردکس گرفتن بازالکه کاشه هون ان ان حسنه هون انده هون و فلفاقل لیسه و الا لکان الموجود اندهام از زم صرفا اول مد که زالگ. بر میگن که خب این ذاتی یا وصف لازمه؟ میگن نه وصف لازمه پس اون یه که با اون بیان ظاهره متفاوت شد لکن حل ظالکه به ذات اول وصف لازم الحق و که که وصف لازمه نه ذاتی لانا نراهو یطلقون الحسن والمدحب بالمتابقه للواقه ولا یقیدونهو به ها فجعه اندام تعلیلیه لا تقییدیتون اینو ای میگن آقا حالا این که ما گفتیم این جوریه. ذاتی بگیریم یا وصل لازم یا وصل لازم بگیریم چرا چون که اینها ای خلاصه حسن وقب رو کلی میگن و مطابق واقع حسابش میکنن مش قیدی نمیزنن پس اینجا جهت تعلیلی مد نظره یعنی با منشأ چه حیثیت تحلیلی شبیه چی میشه شبیه حکمت میشه که موقع دائر مدار اون نیست ولی علت اگه باشه جنبه تعقییدی میشه برخلاف این اسم گذاری وقتی میگیم یک چیز علت به تعقییدی بودن میخوره جهت تقییدی چرا؟ چون که در علت اگه ما کشف علت بکنیم حک دایرمدار علت هست تو تقییدی هم همینطور ولی اگر گفتیم یه چیزی جهت تعلیلی داره شبیه حکمته چرا؟ چونکه ما میگیم بله فلان نکته باعث شد که این حکی جهل بشه ولی حکی دایر این لزمن نیست فقط جهت تحلیلیه، پس هر جا گفتیم جهت تحلیلیه، شبیه حکمته اگه گفتیم حیثیت تقییدی هست یعنی این قیده باید رایت بشه این میشه در واقع کشف علت با اون همسان خواهد بود فلان جهت اون تعلیلیتون لا تقییدی هم. یعنی آنل متصل به خود اندالاقاب کلام الموصوف بالمتابق آم. بعد با این اگه این چه چیزی حسن اون که جمله متابق واقع باشه لانه متابق لال واقع. لال کلام المقیاد به تطابق الان نه به یکود تغییر داخلم ولقت خارج نه اینکه ما به برای میشتون چارچوب که بگیم اوه این با خودش با مطابقه واقع باشه نه اینکه بگیم خلاصه این کلام مطابق نباشه ولی کلام مقید به تطابق باشه یه جوری که ما تطابق گرم خلاصه این یه قیدی بزنیم این قیدا هم داخلی ب... تقیید رو داخلی حساب کنیم ولی قید خارجی باشه حالا اینا دیگه پیچیده شد از بحثمون یه کمی افتاد دور خب پس در مجموع ارس کردیم که آه این بحث تزاهن رو اگر می پیگیر بشیم آیا مبانی کلامی هم یا نه من این رو عرض کنم در فکر ما هم مفهوم تزاهن رو عرض کردم مرغوم شیخ انصاری خیلی زیاد به کار بردن قبل از ایشان ساعت جواهر یا هفت مورد یا نه مداد به معوع اصطلاحی مقابل تض من در آوردم تو کل جواهر موارد دیگم اگر بود به معو طاحی نبود حالا یادم نیست چیزی بود یا نهقلی شیه خصص داره. اما استادشان شریفول اوولاد در زوا و طول اصول و شااعتته ووسالمت دیگه دیگهم داشتن یا نه یادم نیست. هرچی گشتم تظامم اصطلاحی رو پیدا نکرد پس معلوم میشه از شریفول آولما احتمالاً نبوده از خود ز جواهر رو. پس شیخ و اینا رایت شده بعد مرحوم نوینی مفهوم تزاهوم رو پررنگ کردن و آمدن مرجعات رو مدزعه کردن مناشه تزاهوم رو عرض کردیم جلسه قبل پررنگ کردن پس اینجا الان ما خواستیم ارز کنیم از لسان مرحوم شریف العلما در زباب طول اصول که کتاب خیلی است و کتاب مهم تاریخی در تاریخ علم اصول دیدیم که مبانی حسن و قاب در بحث موازنه مسئله مفاسد فل جمله یک تأثیری داره خب یک صلواتی هم دوستان رحمت بفرمایند اللهم صل علی و این یک بحث یک بحث دیگه داریم که حکم به چی تعلق میگیره آیا به احکام تعلق میگیره یا به طبیعت این تو اون بحث بحث لا بلا مبحث اصولی هست در بحث نظریه خطابات قانونی هم این بحث جای جایگاه مهمی داره که طبقه اون نظریه خطابات قانونی حکم به طبیعت تعلق میگیره بعد عقل انسان میره تطبیق میکنه به اگر فرض کنیم به افراد بخوره این با اون نظریه انحلال بعد بگیم سازگاری داره که که صادر میشه به خود افراد تعلق میگیره ای، نه اینکه بعد عقل بره اون طبیعت رو تطمیق کنه نه طبقه این یک نظری به طبیعت تعلق میگیری خب حالا اینجا ربطش به بحث ما از این منظر میتوانه باشه که تعلق حکم به افراد ممکنه مختزی تغییر پذیری حسن و قب تلقی بشه میتوانه مختزی تأثیر مسال و مفاسدی بشه که بر امور مختلف آرز میشن بنابراین این مقوله تعلق حکم افراد یا طبیعت میتوانه یک گره بخوره با موانه مختلف در حسن و, و از اون طریق در نحوه امتصال تأثیر گذار باشه مرحوم شریف العلم باز اینجا هم آمدن دیدگاه مربوط به حسن رو در این منظر مورد توجه قرار دادن یه نکته کلیدی از کنم بعضی از موارد تاریخی داریم از دانش اصول دانش فقه لزومنی نیست که هر فقیه متأخری همه مباحث پیشینیان رو دنبال کنه بعضی از مباحث پیش متأخرین ممکنه اجازه زوائد بدونم نگا آقا ضروری نیست بذارش کنار آگاهانه بذارن کنار یا خیلی راحت کنارش اور کنن و قائل بشن که این خیلی سمره عملی در فقه نداره تاثیرش کمه اینو ممکن آگاهانه بذارن کنار اما معبولا در سیر دانش همه دانش ها این گونه است بعضی مبازگاه یا قاید همینطوری آرام آرام به هر دلیلی بهش دیگه نمی پردازن. در صورتی که یک فرد دانشمند دیگه بعد ها ممکنه هم اونا رو بپردازه نگاه کنید چه حقای خوبی قبل هم شما چرا بذاشید کنار تو این مباعثم به حال خیلی مباعث این یک فراز و فرودی در دانش تاریخ دانش اصول و اینا داشتیم در باخاندن قوانین خیلی طول میکشید اصول رو بخانند بعد آخند خراسانه رحمت الله علیه آمد درس خارج رو در چهار کرد و. کفایه رو نوش بعد حالا شد دوباره محور درس های خارج طولانی خب اما خود مرحوم آخوند که محور مباحث بعدی قرار گرفت خیلی از مباحث رو برای نیابرد لذا از این جهت بعض از مباحث که میمکنه اهمیت داشته باشه مقرار نیست مقلده یک عالم بشیم نظرات آل... علم های دیگر رو کلان سانسور کنین شما بکنی، بکنی، به ردیه تعمالی بکنین توجهی بکنین به قوانین، بحث فصول حالا در نظام درسی یه بحثه ممکن خیلی از بباست نشه همه رو یه اندازی به هر حال باید کرد یه مبنای باید خلاصه اختیار بشه به صورت فردی یا گروهی اما در اطلاعات و پیجوش ها باید دنبال کرد این تذکری که من بعض از این موارد رو از دل کتب تاریخی در میارم شما نگید آقا متاخرین رو بحث کردن یا نکردن تو اختزای فعالیت هجوهشی خیلی از مباعث باید بازخانی بشه دیگه اون وقت خود شما بعد از تأمل باید بگید که این رو من بیارم نیارم تأثیر داره نداره اهمیت داره نداره خب برگردین تو این مثال من هم میخوام بگم, بگم که شریف اللالما پرداخته. شبان اگه آقاین ها دیگه علمای بعدی کنار گذاشتن خب ما یه موقع میخواییم درس صرف درس یک کمی هم میخواییم به بحث پجوهش و تأمل بپردازیم خب ببینیم این مقوله تأثیرش چیه مرحوم همینجا یه نکته هم عرض کنم تو تعریف حکم من این رو با یه خیلی گسترده آرام آرام به یه برداشتی رسیدم که اولا فقط اصولیونش قدیم سنی و بعض از متاخرین تو ترتیب و اصولی تعریف حکرومی و انواع و اقسام و حکم هم دستبندی میکردن یه جا بحث میکردن بعضی از اصولین سنی آرام, آرام این کذاشن کنار همون رفتن سراغ عوامه نواهین فلان اما خود و اقسامش که در فقر پراکنده هست اینا رو خیلی نه پرداختن علمای هم همینطور بعضی از قدم ها یه کمی خود این مقوله حکم و انواعش رو بررسی می دیگه بعد آرام آرام تو سرفصله رایج ترسی از جمله کفایی شما دیگه نمی بینید مثلا تعریف حکم رو از کجا وقت پیدا کنید بعد اگر انواعش رو بخواید به دست بیاره اونم پراکنده مثلا تعریف حکم وضعی لابلاه بحث استصاب به اون مناسبت اینکه که قرار است ما استصاب حکم وضعی بکنیم ببینیم چه دیدگاهی رو بپذیریم اونجا مثلا حکم وضعی تعریف بشه بهش بپردازند در نیاز هست نکته دوم که شبیه این بحث اینی که در تعریف حکم من دیدم بعضی از قدم ها. ایت واد نو تعاریف محدودی که از مفهوم حاکم داشتن حکم شرعی یه تفاوت‌های بیانی دارند. بعد ریشه یابی که کردم دیدم که. ختمش رو از کنم. در بحث حاکم اینجا داریم مرحوم چریفال علما تأثیر بعضی از مبانی کلامی رو در بحث تضاهم دارن ردیابی میکنن در حسن و قب مبانی مربوض به حسن و قب در تضاهم بردم این رو هم عرض میکنم که شبیه این میخوام میگم خود حکم حتی قبل از تساهم تساهم این حکم با اونها خود حکم هم به تجدید، به تدریج دیدم که مبانی کلامی در خود تعریف حکم تاثیر داره اولا داخل پرانتز ارس کردیم خیلی بزرگان متصنع بحث تعریف حکم و اقسامش رو کنار میذارن اونایی که میپرسن خیلی کم تعریف میکنن و بعضی که تعریف میکنه یه مقداری مبانی کلامی مربوط به این که شاره نفس, نفس دارد یا نه داخله. که میگن فرض بگیریم که آه حکمی در نفس شاره هست یا نیست یه نوع انسان انگاری مثلا توش لحاظ میشه پس تو تعریف حکم اقسام حکم و طبیعتاً برسیم به بحث امتصال دنبال این، اینطور مباحث باشید که دیدگاه های کلامی بینه چه تأثیر داره حالا در این بحث ما حکم گفتیم که حکم به طبیعت میخوره یا به افراد اون بحث که میخواب ارز کنم که محدود به این مقوله نیست تأثیر نگاه کلامی اینجا الان مرحوم شریف العالم میفرماید. اگر دیدگاه اشائره رو ما قبول کنیم به نحو واقعی می توانیم بگیم که حکم هم می توانه به طبیعت بخوره هم به افراد اما اگر قائل به توقف بشیم خب که نظر خودشان یه جایی این گونه است که ما علم به حسن قبع به نفع لازم نداریم اینجا احتمالات مختلفی میتونه باشه اگر نگاه اشعری داشته باشیم هم میتونه حکم طبیعت بخوره هم به افراد اما اگر ما شبیه مرحوم شریف العلماء قلب توقف باشیم نگیم دا که حتما وصل لازمه یا وصف ذاتی این بخشه این بحث و میتوانه متفاوت باشه و این احتمالات ظاهری هستن و خلاص متفاوت مورد سوم، اگر حسن و در همه موارد ذاتی یا به وسب لازم باشه ایشان میفرمایند که این احکام دیگه به تبایه تعلق میگنند نگید به افراد اگر مبنای ذاتی بودن یا وصف لازم بودن رو قبول کنید که بگید حسن و قب ذاتیست یا وصف لازمه دیگه احکام شرعی به طبیعت با تعلق بگیر شما دیگه سران افراد ندید حتی اگر بخواید بگید که حسن و به فرد هم تعلق گرفته شاره جهت کلیت اون مورد رو لحاظ میکنه نه خصوصیت رو پس اینم مورد سوم، اگر چهارم اگر حسن در برخی موارد اعتباری باشه اونجا به احکام میتونه تعلق احکام میتونه به افراد تعلق بگیره حالا میرم آقا دوباره مروری میکنم خلاصه شد اگر حسن و در همه موارد به اعتبارات باشه در همشون احکام به حکم به افراد تعلق میگیره، به طبیعت نمیخوره پس ببینید این دو الان چی شد تا اینجا یک پسیشان دارن تفکیه قائل میشن اگر نظر اشاعره رو بگیریم می توانیم بگیم که حسن, حسن نظر اشاعره چیه حسن و ذاتی نیست و کاملا اعتباریه الامر همیشه به يد الحاکم باشه که در فلسفه اخلاق بهش میگن نظریه امر الهی در کلام بهش میگن نظری حسن قبع شرعی که در واقع وقتی حسن قبع شرعی باشه یعنی اعتباریه یعنی ذاتی نیست اما اگر نگاه عدلیه رو بگیریم موشی و متلزله قائل هم به چیز ذاتی بودن خب پس حسن قبع شرعی نظری اشاعر است بر اساس مبانی اینها هم می توانه متعلق به طبیعت باشه هم می توانه به افراد تعلق بگیره. اگه قائل به توقف باشیم اینجا متفاوت خواهد بود یه جوری ظاهری میشه این احتمالات اگر همه موارد حسن و رو ما بگیم ذاتیه یا به بسه لازمه اینجا فقط به می میتوانه تعلق بگیره اگه شما بخواید به افرادم برگرد دارید به خاطر اون حیثیتشه اون جنبه کلیشه اگر حسن قوب در برخی جا اعتباری باشه اون تون موارد اعتباری به افراد تعلق میگیره اگه حسن قوب در همه موارد اعتباری باشه تو همه اونها به افراد تعلق میگیره پس اعتباری بودن با تعلق به افراد سازگاری داره بستیگی داره همه جا قبول کنیم یا بعضی ها اما اگر ذاتی بودن رو قبول کنیم اون به طبیعت تعلق می گیره خب در طول به تفصیلم نتیجه متفاوت خواهد بودم خلاصه بس دیگه حالا من متنشو خیلی متن طولانی اگر بخوام بخونم از حوصله شما خارج خواهد بود پس اجمالا اون جایی که نحو تمایل به ذاتی بودن اونجا به طبیعت اگر اعتباری باشه به افراد حالا همه جا رو اعتباری بگیریم یا بعضی جا بگیریم کم و زیاد میشه پس این هم یک سمره که طبیعتاً تو بحث خب توی بحث تضاهم ریشه بحث اینه که آقا شما حکمی که میخواید بگیریم تضاهم کردن به افراد خورده بیا یا به طبیعت بعد ما این رو چجوری تطویق بکنیم حالا این متن شما نمیخوانم اگر یه سلاوات و بفرمایید ما یکی دو دقیقه استراحت، اگر این فرمایشی دارید بعد من حلقه بحث و بحث رو شروع کنم در مده بحث کشف اهم و مهم رب